قصه های صفی بر روایت فضل الله مقتدی اثر شده کانال هزار افسان مدیریت محمد جواد بوستانی روایتگر پریسا صادقی این داستان پسری که در تابوت گذاشتند. یکی بود و یکی نبود سال‌های سال پیش در یک شهر دو نفر دوره گرد که به این در و اون در میزدن و همه جا رو زیر پا شبی به یک ده رسیدند به هر جا رو کردن و به هر دری زدن و از هر کسی که خواهش کردند که شب جایی برای خواب به اونها بده هیچکس قبول نکرد تا رسیدن ایک آدم بی که بچه زیاد داشت. اونقدر که نمیدونست کدومشون تو تابستون به دنیا آمدن و کدومشون سمستون. همون روزها هم زن باردارش میخواست بچه دیگری رو به دنیا بیاره. مرد بینوا به اونها گفت من جا ندارم وگرنه شما را رو روی چشمم میذاشتم. از بس بچه دارم برای خودمونم راحتی جا نداریم. دورگردها گفتن ای نداره، ما جای خوب نمیخوایم. تو یک کمی کاه روی زمین بریز ما روی اون میخوابیم مرد بینوا گفت بسیار خوب ولی یه مشکل دیگه هم تو کار هست شاید زنم بخواد زایمان کنه اون وقت شما چیکار میکنید گفتن یک کاریش میکنیم.» آدم بینوا یه خورده کاه آورد و روی زمین ریخت اما دیگه ملافه نداشت که روی کاه ها بکشه دورگرد ها یک تکه نون خواستن. گفت نونم نداریم. بناچار اونها گرسنه خوابیدند یک از زن جیف کشید که ای وای مردم. بینوا ترسید و سرگردون موند که چی کار کنه. یک از که بر اون یکی دیگه سروری داشت به اون یکی گفت برو ببین هوا چطوره. اون دورگرد رفت و برگشت و گفت ابره. گفت بچه الان به دنیا نمیاد بعد از نیم ساعت باز زنجیق بلندی کشید دوباره دورگرد به همراهیش گفت برو ببین هوا چطوره رفت و برگشت و گفت ابر یکم کم شده نفر اول گفت حالا هم بچه نمیاد دفعه سوم زنجیق بلند تری کشید دورگرد اول گفت برو ببین هوا چطوره رفت و برگشت و گفت، هوا صافه و ابریم تو آسمون نیست. دورگرد اول گفت، الان بچه به دنیا میاد. این رو گفت و هر دو بیرون رفتند، زن هم یک پسر قشنگ زایید. در همسایگی اونها مرد خیلی دارایی بود. زن اون هم در همون ساعت یک دختر زایید. این مرد دارا هم از اونهایی بود که دورگرد ها به خونش پناه برده بودن و اون راهشون نداده بود. به هر تقدیر صبح شده و دورگرد ها به راه افتادند ولی اون دورگرد که پیرتر و بزرگتر بود انگشتر ارزشی توی کاها گذاشت که یادم رفته و جامونده. از این راه میخواست راستی و درستی بینوار و متوجه بشه. آدم بی بعد از رفتن دورگردها اومد که کاه رو جارو کنه انگشتر رو پیدا کرد. بزنش گفت ای داده بر من اینا انگوشترشون اینجا جا گذاشتن. من باید به دنبالشون برم و پیداشون کنم و انگشتر رو بهشون بدم. مرد بینوا این طرف و اون طرف دوید تا بیرون ده دنبال دورگردها ها رفت و از دور دید. وقتی که تون می صداشون کرد، اونا نشنیدن، تون تر رفت، صداشو بلندتر کرد تا یکی از اونها شنید و به نفر بعدی گفت میزبان دیشب ما داره دنبال ما میاد، چطور شده؟ یکی دیگه گفت، عجله نکن تا به ما برسه مرد بینوا هسته و نفذ زنون به دور گرد و گفت انگشتن شما جا مونده بود، براتون آوردم مرد دورگرد گفت سپاسگزارم حالا بگو ببینم. در برابر این خوبی چه کاری برای تو میتونیم بکنیم؟ مرد بینوا گفت اگه بشه و بتونین خواهشی دارم و اون اینی که وقتی من بی و بینوا هستم کسی هم من نمیشه که بچم رو به کلیسا ببره تا کشیش اون رو نامگذاری کنه. شما این کار رو بکنید دورگردها ها گفتن بسیار خوب. برگشتم. بچه ای که لباس نداشت یک کهنه روشانداختن و بردن پیشی کشیش. همون وقت هم دختر همسایه دارا رو بردن. چون اونها دارا بودن میخواستن اول بچه اونها نامگذاری بشه ولی دورگرد گفت نمیشه. اول پسر بعد از پسر دختر. این بود که اول نامگذاری پسر مرد بینوا انجام شد. مرد پولدار آشفته شد و به همه دشنام میداد و میگفت میخوام ببینم این گدا که نون نداره بخوره، به همدوشاش چی میده که بخورن؟ زن مرد بینوا بعد از زایمان ناخوش نشد، یکی از دورگرد ها ازش پرسید یک خرده آرد نداری که نون شیرینی بپسی؟ زن گفت، 20 سال رنگ آرد گندم رو ندیدم دورگرد گفت، بره نگاه کن لابک آردی که 20 سال پیش توش خمیر میکردی، یه خرد خمیر به تهش چسبیده اونو بکن و بیار زن رفت و همون کار رو کرد ولی به اندازه یک انگشتونه هم نشد دورگرد گفت توی لاوک بذار زن گفت گوم میشه مرد گفت باکی نیست ببر ببر خیسش کن زن هرچی که اینا گفتن گوش کرد آرد رو خیس کرد ولی از یک نخود بیشتر نشد دورگرد به مرد گفت برو انبار رو گوشت پیدا کن بینا گفت ما دیگه نمیدونیم گوشت چه شکلیه گفت برو ببین بینوا تا رفتید انبار پر از شقه های گوشته همه رو آورد پای دورگرد به زن گفت تنور رو گرم کن تنور که گرم شد گفت خمیرها رو شش تکه کن وقتی که زن بینوا خمیر رو شش تکه کرد هر تیکش از یک گندم بزرگتر نشد اما هرچی که اونها گفتند گوش کرد و اونها رو انداخت توی تنور. بعد از اون دورگرد گفت نونها رو نگاه کن. زن نگاه کرد و سرگردون موند. برای اینکه که تا نون بزرگ توی تنور بود. دورگرد به آدم بینوا گفت شربت بیار. گفت بشکی شربت ما که چوب درست شده بوده خوش شده. بیس ساله که ما شربت ندیدیم. دورگرد گفت برو به زیر زمین نگاه کن. مرد بینوا رفت و دید یک شربت خوش رنگ و خوب، یک شربت سکنجبین خوش رنگ رو اونجا هست. یک قده بزرگ از اون بالا آورد. گوشت هم آماده شد و نشستن که شام بخورن. همسایه دارا هم مهمانی بزرگی داد. میون مهمونی به همدوش های زنش گفت بریم ببینین این گدا به هم دوشاش چی میده؟ چون همدوشها ها زن بودن، زنها هم برای ته و توی قضیه رو در بیارن، رفتن به تماشا. تا یکی از گرد، ها دید که از پنجره نگاه می کنن، دو تا تیکه گوشت بزرگ از پنجره انداخت بیرون و گفت، این هم مال سک اما زن ها گوشت ها رو برداشتن و گذاشتن تو پیشبندشون و گفتن، اینها گوشت خوبیه، اینا گوشتاش به درد بخور و، صاف و بیچربیه نگوشته میزبان ما دورگرد دفعه دیگه یی تیکه نون سفید بزرگ رو انداخت بیرون زنها همون رو برداشتن و بعد از اون که بردن پهلوی مرد دارا اون هم انگشت به دهن موند و پرسید مگه اونجا چه خبره زنها گفتن از اینجا خیلی بهتره ببین برای سنک ها چی می‌اندازن شربتی هم که میخورن از های شما بهتره چیزی که ما رو شگفت زده کرده این بود که یک از دورگرد ها به بینوا گفت تو روزی رو میبینی که پسر تو دختر مرد دارا رو به زنی بگیره. مرد دارا وقتی این حرف به گوشش رسید برای شفته شد و گفت دختر من پسر این مردی گدا پس بهتر من این دختر رو بکشم و ندارم روز این کار بشه. دو دورگرد روز دیگه از مرد بینوا خداحافظی کردن و براه افتاد. مرد بینوا چند روزی با زن و فرزندش خوب میخوردن و می نوشیدن تا روزی که نون و گوشت و شربت ته کشید. همسای مرد بینوا یعنی مرد پولدار همیشه در این فکر بود که چطور باید بچه‌ی مرد بینوا رو از میون برداره. روزی به گفت این پسر رو به من بده برای اینکه تو چیزی نداری که به اون بدی که بخوره و بپوشه. شاید روزی دختر من زن اون بشه و من از حالا از اون نگهداری کنم. دو من گندم هم به تو میدم مرد بینوا با خودش گفت این بچه تو این خونه همیشه گرسنه است ولی اونجا به خوشی زندگی میکنه و بزرگ میشه پسر رو به مرد دارا داد مرد پولدار همون روز یک تابوت کوچیک ساخت و بچه رو در اونجا داد و میخکوب کرد و به رودخونه انداخت رودخونه از آسیابی میگذشت که نزدیک اون ده بود تابوت به آسیاب رسید و به دیوار آسیاب خورد. آسیابون تق شنید بیرون اومد و دید که این تابوت اونجاست. اون رو به خونه ورد و به زنش گفت. بیا باز کنیم ببینیم آب توی این چی بوده که آورده برای ما. باز کردن و دیدن یه پسر خوشگل و تندرست. زن شد و گفت چه خوشبختی به ما روی آورده. ما فرزند نداشتیم. خداوند به ما یک فرزند عطا کرد. از بچه به خوبی نگهداری کردند تا بزرگ شد. دختر مرد پولدار هم بزرگ شد. یک روز مرد ثروتمند گندم زیادی به آسیاب برد تا برای عروسی دخترش آرت کنه. دید یه پسر زیبا در اونجاست. خوب کار میکنه و کمک خوبی برای آسیابونه. از آسیابون پرسید این پسر کیه؟ آسیا بان پیش آمد رو براش گفت و مرد سروت فهمید که این پسر بچه اون مرد بی نواز. با آسیابون گفت خواهش میکنم دستور بدهی که این جوان پیش زن من بره و نامه رو که می به اون برسونه چون حرفی هست که باید اون بدونه و من فراموش کردم بهش بگم. آسیابون گفت خیلی خوب نامت رو بنویس. میگم برداره و ببره و برسونه. نامه را نوشته و به دست پسر داد در میون راه پسر به پیرمرد نورانی موسفیدی برخورد کرد پیرمرد پرسید فرزند با این عجله داری کجا میری گفت میرم بده تا نامه ی مرد ثروتمند را به زنش بدم گفت نامه را به من نشون بده پسر نمیخواست این کار انجام بده ولی پیرمرد به زور گرفت و نامه را باز کرد و خوند که زن گرامی من تو همیشه به حرفهای من گوش میدی حالا هم گوش بده وقتی که این پسر پیش تو رسید یک زهر فراهم کن و در شربت بریز و به اون بده تا بمیره پیرمرد کاغذ دیگه نوشت و در پاکت گذاشت و به دست پسر داد پسر کاغذ رو برد و به زن ثروتمند داد در اون نامه نوشته شده بود زن گرامی من تو همیشه به های من گوش میدی حالا هم گوش بده وقتی که این پسر پیش تو برسه و این نامه رو به تو بده دختر رو فوری به زنی این پسر بده تا عروسی کنه. زن با پسر و دختر پیش کشیش رفت و عروسی رو به راه انداخت. پیره که از پسر نامه رو گرفت و نامه ای به جای اون داد همون ولگردی بود که در شبی که پسر به دنیا آمد تو خونه اونها بود. مرد جربتمند کارش که تموم شد و گندمش آرد و کیسه آرد هم آماده شد برگشت به خونه. دید پسر بینوا با دخترش دست در دست هم در باغ راه میره. آشفته شد و شلاقی که در دست داشت به دور انداخت و رفت پیش زنش و گفت ای زن من به تو چی نوشتم؟ زن نامر آورد و گفت این مگه نوشته تو نیست؟ مرد دید نوشته مثل نوشته خودشه گفت چیزی نیست. از میون میبرمش. به پسر گفت. تو با دختر من عروسی کردی ولی تا از پادشاه گلها سه تا گل برام نیاری دختر من مال تو نمیشه برای پسر چند تا نون توی کیسه گذاشتن و روونش کردن. پسر رفت و رفت تا رسید به شهر بزرگی که در اون کاف پادشاهی عظیم و ثروتمند. پسر نونش تموم شده بود گفت باید اینجا یک نونی به دست بیارم. رفت پهلوی پادشاه. دید پادشاه از بس که بدنش زخمه نمیتونه تکون بخوره. پادشاه از پسر پرسید کجا میری؟ پسر گفت میرم بیش پادشاه گلها که تا گل بیارم. شاه گفت اگر اونجا رفته ازش بپرس چرا بدن من پر از زخمه؟ هرچی که گفت برای من بگو. کیسش رو پار از نان کرد و جیبش رو پر از پول و روانش کردن. رفت و رفت تا رسید به شهری که در اون شهر هم کاخ پادشاهی بود. این پادشاه کور بود تا فهمید که این پسر میخواد بره پهلوی پادشاه گلها ازش خواهش کرد که از پادشاه گلها بپرس: چرا من کور شدم و در برگشت هرچی که اون گفت به من بگو. از اونجا هم پسر با کیسه ای پر به راه افتاد. از هفت کشور رد شد تا نونش تموم شد. به دریاچه خیلی بزرگ رسید نمیدونست چطور از آب رد بشه. در این میون دید. زنی با قایق روی آبه. از اون خواهش کرد که اون رو به اون طرف آب ببره. زن گفت. تو رو میبرم اما وقتی به کاخ پادشاه گلها رسیدی از اون بپرس چرا کار من باید قایق رونی باشه و همیشه این ور و اون ور آب رفت آمد کنم پسر گفت خیلی خوب زن پسر رو برد به اون ور آب پسرم رفت پیش پادشاه گلها زن پادشاه در کاخ بود ولی خود پادشاه نبود زن به پسر گفت اگر شوهرم تو رو اینجا ببینه برای شفته میشه و تو رو فوری میکشه. ولی وقتی که به خونه میاد خسته و گرسنه نست. شام میخوره و میخوابه. تو زیر تخت خوابش پنهان شو. پسر رو گذاشت زیر تخت و یک چیزی هم گذاشت روش. پادشاه گلها اومد. از زنش برسید. مگر کسی اینجا بود که بوی آدمی میاد. می آد. زن گفت. کسی اینجا نبوده تو این اونور رفتی این بود توی دماغت مونده پادشاه شام خورد و خوابید زنش همین که دید شوهرش به خواب رفته یک از موهای اون رو کند موهاش گل بود شاه بیدار شد و گفت به بخوابم زن گفت در خواب دیدم که در شهری یک پادشاه که بدنش زخمه چرا اینطوره؟ پادشاه گفت برای این که نونش رو در تنور مخصوصی میپزند و در اون تنور یه قورباغه بد زندگی میکنه. هر نونی که اونجا میپزند تباه میشه. اگر این تنور رو از بین ببرند و از تنونی نون بخوره که همه مردم نون میخورن، تندرست میشه. فهمیدی؟ حالا بزار بخوابم. تا خوابش برد، زنش موی دیگه کند پادشاه دوباره بیدار شد و پرسید. ای زن، چه خبرته؟ زنش گفت خواب دیدم، خواب دیدم، خواب دیدم پادشاهیه که کور شده و نمیدونه چرا. پادشاه گفت برای اینکه بام کاخش یک طبیل است و همه چیزش تلاس و جلی کاخش یه است. اگر این طلاها رو بریزه تو آب رودخونه و با پشت بامش رو مثل پشت بوم مردم درست کنه چشماش دوباره بینا میشه. اینو گفت و دوباره به خواب زن باز موی سوم رو کند و پادشاه بیدار شد. پادشاه گفت: چرا اینقدر من آزار میدی؟ زنش گفت: چی کنم؟ خواب دیدم. خواب دیدم که زن بیچارهی ناچار روی آب با قایق رفت آمد کنه. چرا اینطوریه؟ پادشاه گفت: برای اینکه روزی که میبایس کار بهتری یاد بگیره یاد نگرفته. کار دیگه یاد بگیره و دست از اون کار بکشه. اما این بار اگر بیدارم کردی کتک میخوری زن گفت، راحت بخواب که دیگه من هیچ آزاری به تو نمیرسونم. پادشاه خوابش بود. زن از پسر پرسید، حرفای پادشاه رو شنیدی؟ پسر گفت، شنیدم. زن سه تا گل رو به اون داد و گفت، جواب اون زن رو وقتی بده که تو رو از آب رد کرده باشه وگرنه ردت نمیکنه. پسر سپاس گذاری کرد و خداحافظی. پسر آمد تا زن رو کنار دریاچه پیدا کرد. زن پرسید: پاسخ پرسش من چی بود؟ پسر گفت: منو از آب رد کن تا بهت بگم. زن گفت: تا نگی تو رو نمیبرم. پسر گفت: تا منو نبری نمیگم. زن به بناچار پسر رو به اون طرف آب برد و پاسخ خودش رو شنید. از اونجا رفت و رفت تا رسید به شهر پادشاه کور. پادشاه گفت، پادشاه گلها در من چی گفت؟ پسر گفت، اگر میخوای چشمت باز بشه باید تلاها رو در آب روتخونه بریزی. پادشاه گفت، پسر رو به زندان بندازیم که اگر سخنش نادرست بود، بکشیمش. بعد از اون تلاها رو توی آب ریختن. مردم شادی کردن و هر کسی از اون تلاها بحرهی برداشت. چشم پادشاه هم بینا شد پادشاه پرسید از من چی میخوای؟ گفت هر چی که بدی پادشاه اسب قشنگی با دو کیسه طلا بهش داد پسر از اونجا به شهر دیگه رسید پادشاه گفت خب درباره زخم بدن من پادشاه گلها چی به تو گفت پسر جواب داد تو تنوری که نون پادشاه پخته میشه یه قربا قصد که نونها رو تباه میکنه و بدن پادشاه زخمی میشه. پادشاه باید از تنوری که همه مردم نون میخورن نون بخوره تا خوب بشه. پادشاه باز عصبانی شد و پسر رو به زندان انداخت ولی وقتی که تنور رو خراب کرد و مثل مردم نون خورد خوب شد. اون هم پسر رو آزاد کرد و یک اسب با دو کیسه طلا بهش داد. پسر از اونجا به خونه پدرزنش پدر زنش اومد دید بیچاره شدن. خونشون شون خراب شده. چیزی ندارن تا بخورن. پسر گفت خیلی چیزا آوردم. سه گل از پادشاه گلها آوردم. پدر دختر گفت بگذار رو کلاهت من دیگه لازم ندارم. پسر گفت باکی نیست. آسوده باشین. عروسی حسابی میگیریم و آشدیم. خونه رو پاکیزه کردن و پدر و مادر و خواهر و برادرهای پسر هم اومدن. اون دو نفر دورگرد هم اومدن. جشن بزرگی گرفتن. من هم گوشه اتاق بودم. استخونی انداختن اما تیکه بزرگ گوشت به دستم رسید. نصفش رو بردم به خونه.